كتاب باشترين هاوري خمد نوي كتابو قران بنيو حكمتاكاني نوسيندا كتابي چشتي مجاوري نوسيني هجار مكرياني خمد نوي عميد علي تو مر کردنی دلیر سلین گوگرانی عزیز شو تن شد خوشحالین لبشی دومی خواند نوی کتیبی چشتیم جیوری هجر مکریانی حتی نولاتن فرمون لگل بند ل د ریجن نو سینوکهنی دا هجر بوکرکه خو دلیت ته تول شي خو د زوړ خوشنۍ او کیف د لتمبلې نه به همو کس خوشیده وی او بسر بلندی د جیت روزگار هرچند منډوبي شو د حسې یو کار د ریجن دا پیایب نه به اگر نه توانی وزیر د توانی حمالو کول شرط اویا بیکار نه ګل سرکار یې کما یې جیان تی په تا کاری کې لو باشترو با قازن ستر پیدان کاری خود به جمع اله مله د سم کاری چا تر پیداد کم کار کی خوش د دست به بیکاری بعد راش به پیو تمبل دکه پشت د لکار سردکاته ناژ زانی چون وقت رابيري من رازیلو چرو با نه بلاو با بم دی وه دولت فقیری سخی ده بی هر دویان بو با بیان آقل کرین اگر حتا ببخشا بلان باندازا پاشا روجت لبرچاو بی دنیا به احتو بارا اگر بتوانی شتیکت پز من ده بی بولی قوموانو ندار بون اگر نیتو فقیری چولوانا مکا کزورین هیو زور خرزدکن او وردن نصحتانی من همو زیادین کتیبی باش زور بخوی نروا. بتهی به لیبند نشه ادبیت نوستراوی رابرټ وان لهمو بابه ته کو پرند لا پندیز وربقیمت د توانی برنامهج یعنی اب رومندنه لوانه فیربیو د کاریبینی بمنداوی ګلستاني سعدیم دخویند بابم دی وته دلن ګلستان بحوت صالح دخوینو په هفته سالي تیدګن من شوتم بابا اگر نه ګیشتمه هفته سل کم براستی د زنم سعدی هیڅ نه یشتو ته بخشین و سخاوت دو اگر دستی فقیرو بیا دستیگ بگری حتیو یک پوشتا که یوا بیا وجنیکی حتیو بار یرمتی بدی بخشینی اگر بادی هوا مثلا لداوت شاباشی زیاد لخلق بدی یان لرستورانتیگ چا خانیگ زیاد لوی کابره خاون رستوران دیوه بدی او نایوی کریتیه نک پیاواتی جاریک دگل سید برایمی ازادی لطوریز سرمنتاشی او لجیتی دوت من که حقی سر بو پینج تمانی دا پیموت او بو زیادت دا و تی آخر عیبا پیموت یعنی سبی اکست لروجنامه دا چاب دکن که او کرده نازانی نویچی بو زیادی دای نه لطر اغا هبو زور با خیالی خون بباشم دزانی و تی ما باشا بی که مدیاری بو ککر رحمانی حاجی بایز آغا بدلو داو لی ور نگرتم بزن یچونه بنوکری کی خو یوت لی ور گرو دبر خوتی چقینه زورم دل بخم سوته اتر بر یارم ده کتازه غلطی و نکموا فقیدنات و نشان شان دوله من بدا او ی و زورشته کی بنرغبو لا او هر لایقی نوکرانی بو بونن خواردن دعوتی کس بکا لنا نکت ممنون به دعوتی کسانک مکه ک لتو تیرترو همیشه سفریان لسفری الروجی دعوته ک رنجینترا یعنی اگر مرشکی بو هیلکه کردن لاسای قاز مکروا دنیا پر یتی لپیاو فیلباز کلسر فریودانی دل ساده بس ته زمانان دژین بنیادمن لشیقلی تو بګر تو جوان تر ورکو پکتریشی لوان بلام دبینی بردن بکوی شور بمیزری زلو تسبیح متو مورو خویان الله خلق وروا دلی وره بدبه بهشت یان افندی عینک لچاو خو لسر خلق بهیبت کردوا کاملاک دل ساده دوای خویده دا ورن حسب مدرس کرد وا واتن بودکم، کم و بکری لوندا زور آجدادی خود با دتوانی بیانیه برچاود او کبرای دل شیخم رشی بتاشری شورتکی دا بکری پی خوز بی یان وقت شروع که چی خوف لحمام رو دیتا و چون میمونشید داره چه دکریبلی نادی توش تگنده بمنتابد بمبهشت خویی هر دکمن حوالا بد وای مرد كابرة سیاسی خوان حزب اگر تو لا پیش موابی لسنگرده قبول ما بلام تو بو خود لو پاري خوشی دا بجيو من با کشتنو گرتن بده خوال ناگره جاریک لا شعریکم دا کچا پیش نکره تو ما هرگیز ما بعان تاری پیاوه تو هل پاري باو بدن پلاوه جحیل هم همو جحیلیک هرچاوی لویا جنکی جوانی دسکوه حقی شیحه چون که ارزوی جنسی غالبو تا او جوانتری دست کهوه کفی خوش دره. بلام دبه او بزانی که جوان یکی جن هر حتا دو منگو او پر شش منگو یک سال زور لاد بنرختبه. دبه. لو بولاو تو خزم کسی که دل سوزد دبه. کسی که دبو جیان لازمه که لخوشی و نخوشی ده هر پیت رازی بیو شانازی با رفیقیتی و هاو بشی لجیانت دبکه. خو نخوازه که مندالی کش پیدا بو ایلی دا سر د نا باب لای وابی دبی وقت جاران جنی همون روحو یعنی بطنها لسر او بی. هرچن بابو دایک لخوشویستی من دالده دا دو باره گیونه و بی اک. جا پیو اگر بطمای جن بینی دبی حولی او بدا جنیگ بکات شریکی جن کجنک خوی بزیاتر لمردکی نزانی. منتی بسرده نکا کتنازولی کردو بوته جنی. جنی و جان لمرد دکات جهنم. جنیک مخوازه که بتمعهی درایکت میرد پیپ که چونکه مال دنیا دیو دچه. اگر فقیر بی دجالت حل نکه، جنیشک رحمتی خدا فقیر بی داولمان بی لبهش تیو خوشی دجید. جنی خرابیش و آجنه که بالا پرت پرت دکاتو لود برزه با حوری بهش تیج بی جیانت خلاص بوند زورش تونه. دلم تشوفه سرکچه کی شیخ محمدی خانقا بهیک چی قاضی زردک ما به باب راګین وتی خری خون لبات سیجن جنگ بینی باشتره پیم سیر بو بو, بو رون کرد ما که چی شیخ خو تو پای مرستر دزانی دبه کاراکری کی بو بغری خدمت بکا دبه کاراکری کی بو خود پیدا کی خدمت بکا اگر رګ بکوی کی جکی لدی بنیو خوش بیوی زور چاکتره لکیجه که شهرستانی نازده کرمندی شهرستانی کیجه لاده که دیتا شهر حمامچونو جلی شهرستانی بلاو خوشیهکه که کبهای تو و دستی کوتوا بلام کیجه شهرهکه که عادتی با خوی شهر و گرتوا بهانیلی نبره من خوام جیانی او مردوجنانم بلاو جانو و جیان نیا که هر دوگ لبیانی و تا ایواره های یکه لاداره که دور لیکتر دجینو ایوارا بمندوی دین او مندالیان بخلکی بگان سپردوه. اگر ممکن بیه، جن آگای لمال بیه و پیاو مندو بیه بلامو خوش دره. پیاو که گرانای جیانی لسر و بروشگار دالدار و در جیو هزران قصی نخوش لده سلا دارو بی آکران دبیستی، بدل تو ریا. لمال خوی وگ در برینی هست، واده بیه بسر جنی دا دقی جنی نجیب اویا دل خوشی میردی بده تو، بزن کشن دردو نرختی رجوعی لبیر بته، نک ایش چن به چنید دقل بکاو، مالی لبکا بجهنم. جنیش لمال داریده لبخی اکردنی من الله للاید رو جیران خرابوا دلی پرده ب. چرینا چر، ایش واده ب، حال دچو بولو دردی دل دکا. دبی میردی عقل او کارش حسند جنی. بخرن سردیو دل خوشدان و خمیژن شریکی عمری بروینیو بسریان نګورنیو نیکاته شرو دم له دمنان کم جیان له دوکان طال دبیو لوانه شه لیکجوی ببنوه کوابو د بهر دوک اونده بن اگر یی کی خان خریکتوره دبی او یتریان نرمی کاته وا توریش هر سریکو زو درو او لی وای بوته ماینه راحتی حوالکی پشیمند بیتو او عادت و نن تامر خوش بیو دنیا کنه بهشت خویند کورد دالین جنو مال لورسته جن بوې پېژدخن کتا جن نه به مالش نه به کورد دالین پیاو کری کاری قوراو جن بنه پیاو هرچند خوې ماندوکا زور پیدا کا اگر جنقي بسلي قودل سوزنه به بو مالی مردکی خانو سر نګری جنې کدلې به مالی خوې خوښ بيو مردي خوې خوش بيو هر چی مردی بوید یعنی به و داو مالی رګ د خو حز دکا له خلق خوش بی ترسنوکی و خصیسی با پیوان روشته کی زور ایبا بلاموجن مدح وکړ کی پسنده علی بن حسین تغراسی لامیه العجم دادله قصې زور چاګ در باری او کی جانو دکن کترسنوکو خصیسن پیاو د به ببخشه بلامجن هر د به دل و داو منال داربکا ترسو ازایش دو جورن. توک هر شرب کیو گیچل دخل شی حالنی او ازاتنیه با اخلاقیا بل ام کسګ با زلمت ظلم تلیدکا او ویجهکه وختو اگر لبری دانوینیو دفاع لخود خود نکی ترسنو کیو دزانن چیرو کیک له اغانی دحیا کابره چند برد له ټولې پېویک دکا کشتوبوی بی کوجنوه دوستکی له پرسی بو او کارت کړت وتی من به خطا او کابرایا ظلمی لیده کردم. و تین دعای لیب و شکایت لخواب که. دیتم خوابی هم من اویش موقع تو دروس کردوا. شرم ناکی بو خود دفاع لخود ناکی و هاور بو من دینی، خلاصا شر خلق مکهی خود. بلا مواش خیاری ما خود و جواب نیی. حول بده بشکایتی قانون، بیاری دوستان دوستاند ظلم لسر خود لابره. همیشه زمان و رو خوش با، فیری جویندان بروی خوش و زماني خوش دجمنش دخایته دوست اگر تو راست بیو ناراستهن قصد به دروست کنو غیبتت بکن زه الهمچو راستیو به گناهی بو خو درد کیو قصه هلبست شرمزر ده به حوصله خن سردی لژیاندا بناغی کی زوبته من لا موایه شو کم تو ربونو لپی د نشونو پل نه کړدن نیوی ځانی خوشو دګنزیا تریش وکدبن پیو به حوصله کروشک به ارابه لقصد د خلق خلک کړند ده شرمکه بلان قصي ناس کو په ادب خپل بجره کداوی یاری دو کار پک هاتنه لا حوالو ناسیا ودکی تو قرض ذکر لسری نه کوابه د بی زور پشو لسره خوبی اگر لدکلیک بو پک بینه دي سان شکری اتر دی وتر هر چی و نبه نیوانی د گل ناخوش کیو لای خلشی غیبتیب بزمانی نرمو خوش مر لکون دیتا در ام جار کاریکت بو ناکا بلام لچن زر جاریک فایده که هر لیه دبینی لوانش توشی حوالی وابی که بپی توانا با دل یاریدد بدا با کلمه خزمتمو لطریف کردن فریوم خو اخلاقی کابره که خود لینزیگ دکاتاو بین برچو من لودا زورم زرر کرد دگل براو عیله خود تا باش بی کما خونی خودن. خط با مالی دنیا لیکتن نکه. برایتی منو صادقو عبدالله دگل زینبی خوشکم بومن زور خوش راب براوا. بلام دیسن همو برایک نکریوابن. زور برای واحی لدوجمن خرابتره. زور دوستی واحی لدوجمن خرابتره. زور دوستی واحی لدوجمن خرابتره. زور دوستی واحشه لبرای دیکو بابی چکتره. اوانه تجربه جیان بود دردخه. خلاصی همو مبستان لمر دوستانوا وگ با دوستی چاگ پولی نو گیرفانی خودا اگر بتوانی پیدای که و بفیروی ندهی چیه یکی دلو گیرفان پول دارد خواست گمنات داد داتی کار زور بکا زور خود مندو که با مندت هر لسر گیرفانی خود بی اگر توانید با کسب و کاری خود برربچی دوستو خزمیشت زورا کردالین تا دو کل لسر مطبق دیارا دوستیاتی من هر برقرارا تا جحالی و تا دوانی ببزویو لا حول دان واز مهینه خد زور مندوکا روزگار پیریت لبیربه فقیلی شت لبیربه کبه فقیلی کس نتنسه بو راژن تنگنه صنعتک بزانی زور بکاره اتر هر صنعتک با پین به دلن برسیاتی دوري مالی صنعتکار دده بلان نویریپ چته جوړه ببرویمن اوردان نصحتانج همو زیادین زور بخوین یوه دنیا او کتاب پر یانه زور بنرخ بسرحات و تجربه اشتران ما مستوه اموشگارن به امیدام ببیا پیاوه کزور سربرزو شرف مندانه بجيو بتوانی خدمت بالی قوموانو نخوازه دایشی پیرد بکیو خلقو خواه خوشیان بیوهو نالن پیاوه کی بابروه ایتر اوا خودو اماش چشتی مجاور لوانیا لبسرحات جیانم کسفره کی زور دور و دریجو پرهوارو لیجو خونایو خمایو بوا چن از منو تجربه کت لیدست کهوه یان جروباره با یادی یانی بابت وقت چی روی که بر آگردن با خود و دیک و مندالی خودی بخوین یاوه. لاشدوانه به هر اواندم بسترحاتو و کنوسیو ما. نخیر، زورشتم بودو و نمنوسیوه. زورشم هر لبیر چوتاوه. بلام لم حشت لمشتش ده زورشت های کستران زراکیشو پیت سیر ده بی کچون تاقا پیاویک سی سال آواری ده اوحالی کردو بچند و بچند دردو مخصر ده، درسته پاریو استاش هر با اواری لشاری کرج ناو نو جزیریک دا بیکسو بیدر قطیس مابی با پیریو با تمنی شست و چوار سالی رای دا بیوریو نزن کام روش دنیا بجیدیاله پشم پیشکیا هشار مکوریانی دا چه تصر نو روشی کتی با دستواجی خواه با همیدی تو دست پیدکا بو خوم لبیرم نیا کنگی با یکم جر حتوم بلا مک بوین گرامو باوکم لبیر ورکان خویدانو سیبوی روژی شش شابان سال 1339 هجری مانگی بری بیانی که روژی کی زور توشو برانی بوا لدائیگ بومو بریا هر نبو بام. دائیگو باو دلیان خوشو خنی بون خوا کریکی دونتی. مامان نوشی ببراو مزگینی و حق دست ورگرا. باب هر بپلا. بر لحوتم پلبو نو با تاقانکی بدوزیتوا. لو دامدہ کمردان داوتی خریکی خو نویک تیب بوہ کزور لی خوش اتو د صبخو نوینو سری امک تیبا لکوری خوم دنیم خو نوک تیب عبد الرحمان سیوتیبو زانو شایو میژونا سیخی ل زبره پیغمبرش پرمویہ ناوی زیقی بو فریم مک مجینکن تا کور دباسک نو دیکوباو کا بجرما با وک ملاکا لو رجدا کخو آمکرید دعوتی چلو حش صالی لتمانی رابوردو بلام چون رابور نیک بابیودایی کی هردو ملاو ملازدابون برلوا او چاو به دنیا حل بینه هندیک ملکیان لوندی شرف کنده بوا بلام کوتون فقیری باب زومردو کور کنایو محمدو حماین پیوتو لناو من دالان بوريشان ل قلم داوتی بوته حمه بور ل باوش دای چی به وژنونه هر لويش ماويک درسي خوندوه تمن ل 14 سالن دایا دای کی د نیړه تفقییتی ل باب 20 وتی لو برو ب باب من چیل کیکم د ارز د وژاندو پرسی چیټ دل دایا وتم دایا خوږګه در پی کی تازم ب بوایا ام در پی ام در راوه با خدا نکد دو قرن، کیمیتی درپی تنانت شوار تغ شایش شکنابم، برو بخود ببب پیاو پیدا ک. لفقیت دابو ت مستعد بلام نجی و تاجزا ورگرتن. خالی کام مولانا صادقی خلیفه شیخ بورهان بوآ کرد وقت خدمتکاری خوی. مولانا وکیل و بریکاری شیخ بوالسر ملکو مالی شیخو زور پیاوی کی بابرش تو کرامو بهالسور داسور بوآ شونماری لام هر ماون. پردی قره جادی جدی بصری پردی قلاتاسین کردوی مولانا لسالی گرانی گورەی هزار و سی و شش کوچی منجی خلکی هزار و نوی سردشت ل مردنو بینانی رزگار کردو د خپلوناردنو بخیر خوی دایونتی مولانا جره لشیخ زیز بو او سری خویو باب می حل روی ریکوردو ته شاریوان ل ولات ترشانو بوته میوان می با بختی او دوه در توی اکی سور لمزگو تکه دابو و لو دمده حرامی برگرتنی بوا. نانیوش که انده اوی تو کشی وو خواردویانا. مولانا خوارزاکی خوی خستوات نوبازارو کاسپی فیر کردوا. دای گوت بازار وانده دگل ارمانیک بوم اشنا. روژه گوتی من صد لیر دادمه کاسپی پیابکا. خازانز بانیوی. وتم با پرز بخالم بکم. خالمو تی وادیاره ایمان تن لیگ نزی که بچو لیورگره ورده ورده همه بوات قاشغ فروش در ایران و روس و عثمانی ده تفنگ و فرش و جوهری آلوگار کرده زوری پینا چوا خالی دولمن بوه و لکونده که بناو خورخورا خانقه که بنیاد ناو چندین بخشو رزیشی ده دوری شاری واند کرده عزيزان اللي ردا حاتنا كوتعي بشي دومي خوان نووي كتابي چشتي مجاوري هجار موكرياني تعالقه كيتر